سحر ذ حافظ غیبم رسید مجده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش سحر ذ غیبم رسید مجده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش شدان که اهل نظر بر کنار می‌رفتند هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه می جوش شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش ذکوی میکده دوشش به دوش میبردند بردند امام شهر که سجاده میکشید به دوش دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات مکن به فیس مباحات و زهد هم نفروش محل نور تجلیست رای انور شاه چه قرب او طلبی در صفای نیت کوش به جز سنای جلالش مساز ورد زمیر چه هست گوش دلش محرم قیام سروچ رموز مصلحت ملج خسروان دانند گدای گوش نشینی تو آفضا ما قرو